یک شنبه 29 آوریل 1945 با روشن شدن هوا ترس هم در دل ما بیدار شد صدای شلی که واضحتر، نزدیکتر، تیزتر تر و تهدیدآمیزتر به گوش می رسید بیشتر ساعات روز را به پرسه زدن در اطراف گذراندیم تا اینکه افسر اس, اس دیگری ما را احزار کرد و پس از آنکه تعدادی بازوک به بین ما توضیح کرد دستور داد که در های تراموا که در ساحل غربی پل قرار داده شده بود مازه بگیریم. ابتدا قرار بود پل را منهدم کنند اما یک درجه دار و دو نفر غیر نظامی برای حفظ این بنای تاریخی جان خود را به خطر انداختند و با استفاده از تاریکی شب مواد منفجره را از روی پل برداشتند. هنگامی که داخل ها نشست و از ترس های خود را میجویدیم متوجه شدیم که رئیس زندان سیاسی ناحیه ما به اتفاق دو نفر روی نردبان ایستاده استاده و با پتک مشغول کندن علامت عقاب نازی از سردر ورودی ساختمان بیمه هستند. پس از خاتمه کار بار سنگین را کشان کشان به سمت رودخانه بردند و آن را داخل آب انداختند. اغاب مقرور که در اوج پیروزی هرگز به پرواز در نیامده بود پیچون و چرا به زیر آب فرو رفت. طرز فرو رفتن آن در نظر من، بیانگر همه وقایع گذشته و در حال وقوع بود. در این میان ناگهان زن میان سال چاغ و چله‌ای با فریادهای خشمالوده خائن‌ها و ها آن سه مرد را به باد ناسزا گرفت. اما وقتی فهمید که یکی از آنها رئیس زندان سیاسی ناحیه است که لباس غیر نظامی پوشیده، همانطور که ناگهان شروع کرده بود، ساکت شد. هنگامی که در واگن ها مستقر شدیم، زیر نگاه نگاه‌های مردم قرار گرفتیم که البته بعضی از آنها از همسایگان خودمان بودند آنها موضوع را به مادرم خبر دادند م. ناگهان سر و ای مادرم پیدا شد التماس‌کنان از ما میخواست که از واگن‌ها خارج شویم چیزی دلپذیرتر از آن نبود اما پشت سر ما بر بام ماکسیمیلیانوم مسرصری تعبیه شده بود و افسرمان به ما هشدار داده بود که در صورت ترک پاس بیدرنگ ما را بر رگبار مسرصر خواهد بست اواخر شب مرخص کردند و ما به خوابگاهمان برگشتیم دوشنبه سیوم آوریل 1945 صدای انفجار گلوله توپی در بالای ساختمان ما را از خواب پراند حدود ساعت ده صبح پس از صرف صبحانه دوباره ما را به داخل واگان ها بردند وقتی از اتاق نگهبان می به و اخبار رادیو گوش دادیم مونیخ قهرمانانه مقاومت می‌کرد. و تلفات و خسارات سنگینی به آمریکایی‌ها وارد کرده بود. یک سرباز هم در ها دیده نمیشد. سکوت بر همه جا سایه افکنده بود. از ظهر به بعد صحنه نمایش تغییر کرد. مردم دست به دست دور هم جمع شده بودند و به آرامی درباره موضوعی حتمیال وقوع با یکدیگر گفتگو میکردند. انتظاری آمیخته به هیجان در همه جا دیده میشد. همه احساس میکردند که پایان کار نزدیک است. بر سردر خانه ها پرچم های نصب شده بود که هرگز نظیرش دیده نشده بود. پرچم های سفید، رومیزی، ملحفه و هرچه نشانی از سپیدی داشت. از پنجره و بالکن ها آویخته شده بود. کمی پایینتر در میدان یادبود مکسیمیلیان دوم چند نفر غیر نظامی وارد واگن های تراموا شدند و خواستند واگن ها را از آن محل دور کنند. اما هنگامی که رگبار مسلسل اس اس ها از پشت بام مکسیمیلیانوم بر سر خود باریدن گرفت در حالی که فریاد می کشیدند و شعرهای توخالی میدادند به خیابان های اطراف گریختند. اما مردم آنقدر پا کردند تا سرانجام موفق شدند. واقعا عجیب بود. مردم خود را برای ورود کسانی آماده می کردند که قبلا آنها را تحقیر می و بدین گونه بود که مونیخ، خود را برای آزادی آماده می کرد برای آزادی رفتار مردم مونیخ تفاوتی با سایر مردم در شرایط مشابه در زمان ها و مکان های مختلف نداشت گویی واشه های خائن و آزادی بخش به سرعت قابل تبدیل به یکدیگرند. تا حدود ساعت چهار بعد از ظهر سر های خود در واگان ها نشسته بودیم در این ساعت انبوه جمعیت کم کم در تقاطع ها جمع شده و به انتظاری ایستاده بودند. گروهی نیز وحشت زده زیر کنترل ها قرار داشتند. در این هنگام صدای غیرمنتظر و ضعیف موتوری به گوشمان رسید و خودرویی حشر مانند که به نظر من یک جیپ بود با علامت ستاری سفید به سوی بنای یاد بود به حرکت درآمد. مردم در حالی که قریب شادی سر داده بودند و دستمال تکان می‌دادند به سوی خودرو دویدند. اما خود را با شتاب دور زد و با صدای وحشتناکی دور شد. مردم ناامید به سر جای خود برگشتند. ما هم توافق کرده بودیم که در اولین فرصت از ها پیاده شویم و به هیچ وجه از بازوگه‌ها استفاده نکنیم. چند دقیقه بعد جیپ دیگری که روی آن یک دستگاه مسلسل کار گذاشته شده بود از طرف رودخانه رسید. ما در حالی که به دقت آزار زیر نظر داشتیم در واگان های خود پنهان شدیم و کاملا مراقب بودیم که چه میگذرد. جمعیت ترسان و مردد ایستاده بود و به ماشینی که حدود سی متر با آنها فاصله داشت چش دوخته بود. ماشین مربوط به اس ها بود یا متعلق به امریکای بمانند یا بگریزند؟ ناگهان ماشین دور زد و برگشت و در میان مردم هیجان زده و پرهایهو ایستاد. زنی که روز پیش با خشم فریاد خائن و ترسو سر داده بود نیز در بین جمعیت دیده میشد. او به هر ترتیب راه خود را به سوی ماشین باز کرد و با شادی فراوان یکی از دو سرباز خارجی را که فرم سبز زیتونی بر تن داشتند در آغوش گرفت یکی از آنها با حالت تحقیرآمیزی زن را کنار زد سربازهای جمعی یکی از یگانهای یک ارتش سوم آمریکا بودند که چهار ساعت پیش اردوگاه کاری اجباری را آزاد کرده بود. یکی از امریکایی ها که یک مسلسل سبک در دست داشت، مقابل ما ایستاد و گفت از آنجا بیایید بیرون، جوج نازی های توفه. در آن وضعیت بحرانی احتیاط را از دست داده و برای دیدن منظری که مقابل ما بود، از در واگان به بیرون خم شده بودیم در نهایت تعجب، مسلسل ماکسی میلیانون به کانه افتاد از واگن بیرون آمدیم، سرباز آمریکایی ما را به طرف خانه بزرگی بود ما ازیر شده بودیم مادرم رسید و خواست مرا با خودش ببرد امریکایی نگاهش را به مادرم دوخت تو مادران بچه حرامزاده نازی؟ مادرم گفت میخواهد مرا با خودش ببرد نتوانست برد منزل ما او را با خود برد از او یک دموکرات ساخت نترس ارتش امریکا به او صدمه نزد مادرم زد زیر گریه التماس کرد اما بیفایده بود سرباز مادرم را با خشونت به داخل جمعیت هل داد خیالت راحت، ارتش امریکا مثل ارتش آلمان خشونت نکرد. آنها شروع کردن به پرسش از مردم ولی مردم چیزی دستگیرشون نشوند. اما خودشان بفهمی نفهمی چیزهای از لا حرفهای مردم میفهمیدند. مثلا وقتی چند نفر از بین مردم با صدای بلند گفتن اس اس اس اس،, اس و با اشاره سر و دست از روی پل، ساختمان مکسیمیلیانم را که زمانی نه چندان پیش از آن شلیک شده بود نشان دادند، آمریکایی ها به خوبی متوجه شدند. آنها به سرعت دست به کار شدند. تانک های شرمن را که تازه از راه رسیده بودند، در ساحل رودخانه ایزار در سمت ما مستقر کردند و ساحل رو به رو را نشانه گرفتند. جیپ از کنار رودخانه به طرف بالا حرکت کرد. در این هنگام یک افسر اس اس مسلسل به دست از روی پل شروع به دویدن کرد. آمریکایی ها فرمان ایست دادند. او دست هایش را بالا برد و خود را تسلیم کرد. آمریکاییها در حالی که با لگد او را به طرف ما میراندند، از او سوالاتی میکردند. اما او نمی توانست به پرسش های آنها که به انگلیسی یا به آلمانی شکسته بسته بود، پاسخ دهد. جای تعجب نبود. زیرا او و یگانش از اعضای روسی S.S. بودند. خیابان‌ها پر از خودروها و نیروهای مکانیزه ارتش آمریکا شده بود. مردان برای سربازان آبجو آوردند و در عوض سیگار و شکلات می‌گرفتند. چند دختر هم نخستین این قدم ها را در راه برادری برداشتند. جمعیت اعتنایی به ما نداشت. آمریکایی‌ها دور ما را گرفته بودند. تفنگ‌هایشان را به سوی ما نشانه گرفته و با کنشکاوی و ترس به ما می نگهبانها چشم از ما نمیاشتند. او گویا فکر میکردند با فرار ما ارتش آلمان دوباره پا میگیرد. ظاهرا بیشتر مردم از تغییر آزار راضی بودند اما کسانی هم پیدا می شدند که از آنها و رفتارشان احساس شرم می کردند. افسر بازنشسته سالمندی که در مجتمع یا پارتمانی ما زندگی میکرد به تلخی میگیر چری ای و رفتار منظبت او که از افتخارات گذشته حکایت می کرد، اینک در برابر زربه شکست دوم خرد شده و از پاد در آمده بود. سرانجام نژاد سرور به زانو در آمده بود و بطلان تز برتری نژادی هرچند به ترزی فجیع اما با موفقیت به اثبات رسیده بود. اینک سروران چکمه پستران را می لیزیدن. گروهی دیگر از اعضای سازمان جوانان هیتلری دستگیر شده بودند. جمعاً حدود سی نفر از بچه های ما به اسارت درآمده بودند. بین افسران آمریکایی بحث در گرفت. نمیدانستند با ما چه کنند. افسر دیگری با جیپ از راه رسید و او هم وارد بحث شد. چیزی نگوزاش که دوباره ما را سوار کامیون کردند و تحت مراقبت شدید از مقابل صف های شرمن و دیگر خودروهای زرهی گذراندند. محافظان ما عبارت بودند از پنج سرباز آمریکایی که مسلح به مسلسل دستی در کامیون نشسته بودند. یک جیپ از جلو و جیپ دیگر از عقب با مسلسلهای سنگین به سوی ما نشانه رفته بودند. این همه سخت‌گیری مسخره به نظر می‌رسید. مردم غیرنظامی دور هم جمع شده بودند و با دشمنانشان دست برادری می‌دادند. برخلاف گذشته از هر جا گذشتی ما را هو می کرد. زنی که به شدت احساساتی شده بود شروع کرد به پرتاب پاراجور به سوی ما اما با ضربه قنداق تفنگ یک آمریکایی توی پیاده رو ولأ شد کامیون ما را به یکی از قرارگاه های سابق نیروی هوایی در جنوب آلمان برد پیش از ورود ما آمریکاییها آنجا را به تصرف خود درآورده و دفاترشان را مستقر کرده بودند ما را به طبقه بالا بردند و در اتاقهای زیر زیرشیروانی زندانی کردند پنجره ها باز می شدند ولی فرار غیر ممکن بود. تنها راه خروج تا محوطه پشت ساختمان پنج طبقه ارتفاع داشت. اتاقهای زیر شیروانی مجهز به ننهایی بود که برای خوابیدن از آنها استفاده می شد. از پنجره به منظره شهر چشم دوختیم. در کنار من پیرمردی ایستاده بود که نمی دانم چطوری قاطی ما برخورده بود. او را به جرم عضویت در نیروی بسیج مردمی دستگیر کرده بودند. آن شب اولین شبی بود که خاطره تماشای درخشش تابناک و اطمینان بخش نور در ذهنم زنده شد. بیشتر عمر من در دنیای تاریکی ها سپری شده بود. بنابراین سرشار از عوالم بچگانه به کندن پرده های سیاه کمک کردم و آنگاه از آن بالا دوباره به منظره شکست چشم دوختم. عشق به یکی از کالاهای قابل داد و ستت تبدیل شده بود. دو دختر مست با دکمه های باز از یک تانک بیرون خزیدند. مردم از هر قشر و طبقه به مبادله قیمتی خود مشغول بودند. تنها یک کلمه بر سر زبانها بود. یادگاری سربازان آمریکایی نسبت به پیروزی خود بی تفاوت بودند. اددهی بیخیال خیال می می‌جویدند و سر فرصت مشغول توپ بازی بودند و بعضی به آسودگی در گوشه و کنار خیابان لم داده بودند گروهی از آنها هم در طرف دیگر خیابان محل توقف تراموا میشاشیدند و ظاهراً خیلی هم لذت می‌بردند به پیرمرد گفتم عجب سربازهای مسخره‌ای هستند او موهایم را به هم زد و گفت چاره‌ای نیست آنها ما رو شکست دادند. شکستی مفتزهانه. سپس به طرف خوابگاه هم رفتم و برای اولین بار بدون ترس با خود اندیشیدم که چیز غریبی است. من در شب آغاز حکومت رایش هزار ساله متولد شده بودم و امروز در حالی که من فقط سیزده سال داشتم عمر رایش به پایان رسیده بود. صبح روز بعد که از خواب بیدار شدیم، مشتاقان انتظار صبحانه را می کشیدیم. اما از صبحانه خبری نبود. حدود ساعت ده صبح همچنان درها قفر بود. دست جمعی فریاد می زدیم. ما گرست نیم، ما گرست نیم. حوادی زور در را باز کردند و داد زدند که خوکها بیایید بیرون. همگی در محبت جمع شدیم. دو کامیون منتظر ما بودند. این بار در حالی که سه تا جیپ ما را همراهی میکردند از محوت خارج شدیم. هوا سرد بود. آمیزی از برف و باران جاده را پوشانده بود. در کامیانهای روباز سرما تا مقص و ها نفوز میکرد. از فرد سرما به یکدیگر دیگر چسبیده بودیم. اما کسانی که جلوتر نشسته بودند به تنهایی با سرما دست و پنج نرم میکردند. افراد غیر نظامی به ندرت دیده میشدند. شاید سرمایه هوانها را خانه نشین کرده بود. سربازان مشغول وصل کردن های تلفن بودند. های پرنس ریجنتن و خیابان فوندرتان را با چشمانداز های شهر با سرعت پیمودیم. سر راه خود از کاخ هیتلر واقع در میدان کونیگلیشر گذشتیم. بر دیوار بعضی خرابه ها هنوز شعارهایی به رنگ سفید به این مضمون دیده می‌شد. همراه با پیش و پیش به سوی آزادی ما همچنان استوار ایستاده ایم چقدر کهان و منسوخ به نظر می رسیدند. از تأسیسات برشتایی در سمت راست جاده نیز گذاشتیم و همچنان به سوی مقصد نامعلوم پیش می رفتیم. مونیخ را در امتداد تلی از تدارکات از هم پاشیده یک ارتش شکست خورده پشت سر گذاشتیم بعضی زندانیان آزاد شده از اردوگاه ها جسد رفقایشان را که توسط از اصحاب دارا ویخته شده بودند، از درخت پایین می آوردند، و عدهای تحت مراقبت متفقین از کنار جاده به پیش می رفتند. نه تنها ارتش، بلکه افراد عادی هم تحقیر شده و شکست خورده به نظر می رزیدند. همه بدون استثنا افسرده، کثیف و جولیده بودند. به محض آنکه یکی از نگهبانها تحسیگارش را به زمین پرت می کرد، از جا می پریدند، و بر سر تصاحب آن با یکدیگر به زد و خرد می پرداختند. با دیدن این صحنه یکی ای از آمریکایی ها که روی مسلسلش به جلو خم شده بود، نگاهی به ما کرد و با نیشخندی خندی خرامیز گفت، آلمان خراب، همه چیز خراب. در طول راه پیوسته به مقصد نهایی خود میاندیشیدیم. اندیشیدیم. میگفتن احتمالا احتمالاً ما را به اردوگاه کار اجباری داخعا می برن. چیزی از کارخانه بی در کارسفلد نگذشته بودیم که کامیون ما سرکش کرد و به سمت جاده عریضی که به دروازه بزرگی منتهی می پیش رفت. ما را به اردوگاه کار اجباری می بردند. در چپ و راست ما، سروازان و زندانیان اردوگاه که لباسهای راه راه آبی و سفید به تن نظارشان زار میزد در هم همامیخته بودند، هیچ کس باور نمی کرد که آنها قادر به صحبت کردن باشند یا بدون کمک دیگری بتوانند راه بروند کله هایشان را یا تراشیده بودند یا با کلاهی از جنس لباسشان پوشنده بودند دروازه از دو طرف با دو تانک شرمن محافظت میشد خدمه تانک ها روی برجک تانک نشسته بودند و با آدم های دور و آدامس و شکلات و سیگار میبراندند آمبولانس ها بی در رفت آمد بودند اینجا اردوگاه اس, اس به محض ورود ساختمانهای اداری اس اس را که به اشغال ها پرسنل صلیب سرخ و نیروهای دیگر درآمده بود باز شناختیم. طبق دستور از ها پایین آمدیم در حالی که به شدت از ما محافظت میشد، از روی پل کوچکی در اردوگاه گذشتیم و به ای که با دور سیم خاردار به ارتفاع 7 تا 8 متر محصور شده بود و به فواصل مساوی برچایی در آن ساخته بودند وارد شدیم. مسلسل هایی که بر روی برش ها کار گذاشته بودند، هنوز هم انسان را تهدید می هرچند هرچن آنها چند روز پیش فرار کرده بودند، بسیاری از امریکایی ها به دنبال گروه ما حرکت می کردند، هنگام ورود به محبته، فکر می کردم ساکنان قبلی آن ما را تکه پاره خواهند کرد، اما در برابر شگفتی ما آنها فقط از سر راه ما کنار رفتند و بی آنکه کلامی بر زبان بیاورند، و یا دستشان را به روی ما بلند کنند. به ما خیره شدند و این در حالی بود که سربازان آمریکایی که مراقب ما, ما بودند یک ریز فوش می دادند. ابتدا ما را به ایستگاه راه آهنی که از اردوگاه و هسلی اسمان اس شعب می شد باردند. جلوی چند تا از واگان ها دستور دادن به ایستیم. یک سرباز آمریکایی چند نفر از ما را که به نظر می رسیدند از داخل صف بیرون کشید و به آلمانی سلیس دستور داد در یکی از این واگان های به کمک دیلم و زور بازو درهای واگن را باز کردیم. اولین چیزی که بیرون افتاد جسد یک زن بود. پس از آن دیگر چیزی نبود که بیرون بریزد. اجساد مردگان مانند ساردین طوری کنار هم دیگر ردیف شده بودند که انگار هر کدام دیگری را سر پانگه می داشت. بوی گندی که از این واگان ها بیرون میزد، به راست غیر قابل تحمل بود. و هنگامی که در آنها یکی یکی باز شد. محمولی خوف آن نمایان شد آمریکایی آلمانی زبان خاطرنشان کرد که این اجساد مربوط به جهودهای لهستانی است که از اردوگاهای در حال سقوط به دست روزها یک سر به داخع فرستاده شدند آنها زار و اما زنده وارد این واگنها شده بودند وقتی به مقصد رسیدند فرمانده اس اس به فکر افتاده بود که باز کردن در واگنها به زحمتش نمی هرزد. و آنها را به حال خود رها کرده بود نتیجه کار او در برابر چشم ما قرار داشت بی پرده بگویم اولین واکنش من ناباوری محض بود آلمانی ها هرگز دست به این جنایات هولناکی نمی زدند آلمانی هایی که به عقیده من نابترین شجاعترین و ترین مردم جهان به شمار می رفتند آلمانی هایی که به کانت و دور را پرورانده بودند آلمانی هایی که در جوان مردیم نمونه و سرمشق عالم بودند هرگز هرگز چون این کاری هرگز از یک آلمانی سر نمیزند اما هرچه جلوتر می رفتیم ناباوری اولیه من در هم شکسته می شد دومی محلی که ما را بردند ساختمانی بود با آجرهای قرمز رنگ بوی زنندی از آن به مشام می رسید وارد سالنی شدیم که چند کوره ی در آن دیده می شود. برای لحظی به فکرم رسید که در قسمت تولید بخار هستیم اما وقتی چشممان به برانکارهای فلزی که جلوی هر یک از کوره ها قرار داشت افتاد بیدرنگ اتاق بخار را از یاد بردیم بعضی از این برانکارها هنوز تا نیمه در کوره بودند و ها را بقایای یا اجساد سوخته پوشانده بود از آنجا ما را به یک ردیف اتاقهای کوچک که های کوتاهی داشت بردند چشمان شیشه باز و از هداق درآمده و لبهایی که برای همیشه با فریاد از ما اعتراض داریم گشوده شده بود آشکار شد. در آن لحظات بیشتر ما حالت تحوت داشتیم. پس از ترک آنجا لازم بود کمی استراحت کنیم. آمریکایی ها دورور ما ایستاده بودند و ما را سوال پیچ می کردند. مثلا میخواستم بدانند که اگر از این جنایت ها خبر داشتیم آیا آنها را تایید می کردیم یا نه؟ و پرسش‌های از این است. هیچ کدام پاسخی نداشتیم. گویی با تمام نیرو تلاش می‌کردیم در برابر چنین اتهامی از حیثیت خود دفاع کنیم. هیچ چیز تر از فرو ریختن یک آرمان نیست. آرمانی که زمانی آنقدر الهان بخش بود. هیچ چیز دشوارتر از پذیرش این واقعیت نیست که ناگهان دریابیم مردمی که داناترین مردم جهان خوانده می‌شدند اجازه داده بودند جنایتی چون این سهمین و باور نکردنی به نام آنها صورت گیرد. هیچ چیز دردناکتر از این واقعیت نیست که شخص ناگهان پی ببرد که به یک ماشت آدم حرف ای وابسته است از جابلند شدیم به داخل که از خوابگاهها که در دو طرف جاده قرار داشت رفتیم به محض که در را باز کردیم همان بوی گند واگن های راه آهن به مشاممان خورد. آمریکایی ها صورت را با ماسک سفید رنگی پوشاندند و همراه موارد شدند. خوابگاه پر بود از تخت خوابهای دو طبقه که در هر طبقه آن سه یا چهار مرد لاغر که پوستشان به تنشان چسبیده بود، لخت و اریان کنار هم دراز کشیده بودند. بازوها و پاهایشان انسان را بیشتر به یاد انکبود میانداخت تا اندام یک انسان. آنها به اسکلت های شبیه بودند، با سارین های استخانی و سرهایی که در مقایسه با تن نحیفشان بیشتر به یک کدو حلوایی شبیه بود تا سر یک آدم نه حرکتی، نه علامتی و نه اتهامی تنها ناله ضعیف، بوی تعفون و کسافت بود و بس شاید همه آنها مرده بودند و در واقع هم خیلی از آنها مرده بودند روی هر تخت سه یا چهار نفر در هم مچاله شده بودند در حالی که یک نفر هم به زحمت روی آن می می‌گرفت در آن سوی سالن بهیاران یاران آمریکایی تخت‌ها را با جدا کردن مرده‌ها از زنده ها خالی می‌کردند زنده ها را داخل آمبولانس‌ها می‌بردند و مرده را به وسیله زندانیان اس اس در نقطه‌ای کنار هم میگذاشتند. دستور دادن بنشینیم درخت کوتاهی را به ما نشان دادند که خیلی تنومند بود و به شکلی هرم رشد کرده بود اس, اس ها از این درخت به عنوان چوبه دار استفاده میکردند در نزدیکی آن گودال مستطیل شکل کوچکی دیده میشد که جلوی آن یک پنجره مشبک چوبی قرار داشت از قرار معلوم زندانی را وادار میکردند که دو زانو بالای گودال بنشیند بعد یک اس, اس با هفتیر گلوله‌ای در پشت گردنش شلیک میکرد پس از شلیک گلوله زندانی داخل گودال میافتند. آن وقت زندانیان دیگر مجبور بودند او را از داخل گدال بیرون بکشند تا جا برای خودشان خالی شود ما هجصد دو نفر اس, اس را هم دیدیم که پس از تسخیر اردوگاهها به دست یک زندانی کانادایی به قتل رسیده بودند حالا زندانیان پیشین در همان دور و حوالی ایستاده یا نشسته بودند بعضی از آنها حتی شلوار هم بهپا نداشتند عدهای مشغول پایین آوردن اجساد رفقایشان بودند که به قصد فرار از اردوگاههای مرگ بر فراز سیمهای خاردار آونگ شده بودند بخشی از اردوگاه به علت شیوع تیفوید به صورت قرنطینه درآمده بود شبهنگام با کامیان به منیخ برگشتیم و دوباره در همان اتاقهای زیر شیروانی زندانی شدیم آن شب تا صبح خواب به چشمم نیامد آن چه دیده بودم فوق طاقتم بود بی اختیار عشق می ریختم. برای اولین بار از اینکه آلمانی هستم شرمسار بودم های تکان دهنده ای را که با چشم خود دیده بودم به راستی دردناک و شرم آور بود عمق فاجع بینهایت بود آنچه فاتحان جنگ بر سر ما آوردند در مقایسه با جنایاتی که نازیها بر سر میلیونها انسان بیگناه آورده بودند بسی ناچیز بود های ناچیزی که نیروهای اشغالگر بر ملت آلمان روا داشتند در مقابل گورهای دست جمعی اردوگاه های مخوف نازی ها رنگ می بازند. ملت آلمان به کیفر جنایاتی که مرتکب شده کمترین رنج را برده و سبکترین مجازات را متحمل شده است. در طول تاریخ بشر هیچ ملتی در مقایسه با ملت آلمان این چونین ساده از کیفر مجازات نرزده است. به فاصله کوتاهی پس از جنگ باب شده بود، که می مردم آلمان از وقایی که پشت حسار سیمهای خاردار میگذشت بیخبر بودند. به طور قدر، حتی از وقایی پشت سرشان هم چیزی نمیدانستند. اما آنقدر شواهد و مدارک فراوان بود که هر انسان باشعوری شخصاً می توانست به کنه قضا یا پی ببرد. پس از جنگ، به انگیزه تجربیات هم، بار دیگر کتاب نبرد من نوشته ی هیتلر را از اول تا آخر خواندم بعد رفتم سراغ روزنماهای نازی و اظهارات و سخنرانی های رهبران سیاسی را به دقت مرور کردم اکثریت مردم آلمان این مطالب را شنیده یا خانده بودند در تمام کتابها، ها، و سخنرانی ها، مرام ننگین هیتلر تبلیغ می شود. آلمان نمی تواند با این بهانه که از وقایع پشت بی خبر بوده است خود را تبرعه کند خون میلیون ها انسان بی گناه روزی تاوان خود را خواهد زدند تاوانی نه پول یا جنس. دست های ملت آلمان ها به خون آنها آقشته است و به آسانی پاک نخواهد شد. تمسک به بقای بقایای نصیر حمله هوایی به درستن و اخراج آلمانی ها از نواحی شرقی کشور خود چیزی را عوض نمی کند. و در حکم عذر بدتر از گناه است. و مطلقاً ارتباطی با اعمال الزامانی که به نام کشور آلمان مرتکب شده ندارد.